نام کتاب: داستان جاوید. نویسنده: اسماعیل فسیح محل نشر: تهران. ناشر: معلف چاپ اول: 1359. چاپ چهارم 1371. گوینده: هانیه معینی. صدا بردار: پرستو ولدخان با بررسی ابوالفضل گیلانی تحیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد بخش نابینایان تاریخ ثبت مهر ماه 1388 تلفن تماس 22894004 الی 7 این کتاب مجموعاً در 329 صفحه به چاپ رسیده است پیش گفتار چاپ 4 برخلاف سایر آثار این نگارنده، داستان جاوید، روایت زندگی واقعی یک پسرک از آین کوهن زرتشتی است که در دهه اول قرن و اوج فساد قاجار به وقوع می پیوندد. مسیبت و مظلمهی که بر یک انسان با ایمان وارد گردید، بافت اصلی روایت را تشکیل می دهد. انعکاس های روحی او و نیروی ایمان او به سنت های دیرینی نیاکانش نیز در روایت حفظ گردید است. آشنایی نگارنده با قهرمان اصلی کتاب در سالهای آخر زندگی او در دانشگاهی در خارج از کشور صورت گرفت و الهام بخش خلق این کتاب گردید. دستنویس نویس اولیه این روایت در اوایل دهه پنجاه پس از سالها پژوهش و پیگیری جداگانه آماده گردید. ولی شروع چاپ اول کتاب تا اوواط نیمه دوم این دهه به تاخیر افتاد نگارنده در خلق این اثر به صورت قصه همچنین کوشش نموده بود که احساسها، دردها، دلشکستگیها، نومیدیها و خشمهای پسرک ایرانی را ساده و خام همانطور که خود دریافت نموده و تحت تاثیر قرار گرفته بود در زمان و مکان خاص خود بازافرینی کند، گذشته نیم قرن از تاریخ وقوع روایت و به خصوص تحولات عظیم تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی ایران ممکن است برخی از این انعکاسها به عنوان مثال انعکاسهای قهرالود آخر کتاب هنگام خروج جاوید از درخونگاه سال 1309 را ناملموس جلوگر سازد. یقین است خواننده روشندل ایرانی این نکات را درک خواهد کرد. چنانچه خاننده خواست این اثر ممکن است به عنوان یک رمان خوانده شود ولی در ابعاد گسترده برداشت از یک رمان خطها باید کشیده شود و میشود. هر رمان دارای اشخاص یا کاراکترهای خاص، زمان خاص، محل خاص و پیامی خاص است. پیام خاص این داستان مظلمه است که از شاهزادگان مسلمان قاجار به یک خانواده دست ورز آویخته با آینهای کوهن ایران وارد می شود و درگیری باید به نهایت برسد. شاهزاده ملکارا از رهبران درباری جامعه با تظاهر به دست نماز گرفتن و عابد بودن بعد از نماز مست می خون می ریزد و فساد نوکران و بی خدایی رفتار و لفاظی و فحاشی های آنها نشانگر زمینه دنیای آن روزگار است که محکوم به فنا بود. تنها شخص مسلمان پاکتل و واقعی این جمع سریای افیف است که کوششهای او برای نجات جاوید نه تنها نوید رهایی نمیبخشد بلکه بدبختانه خود او را نیز در مظلمه مفسدین اطرافیان شاهزاده قرار می‌دهد و زندگانیش را تباه می سازد. جاوید شاهزاده را در تاریکی وجود و دنیای فاسدش به قصاص و درگیری را به منزلت تعالی میرساند. در نهایت پیام آخر در اینجا پیروزی ایمان پاک و محکم است بر فساد روح گمراهی افراد فتح نور است بر تاریکی قلبه خوبی است بر بدی با اتکا به خداوند یکتا الف 22 دو هفده هزار و سیصد و, و یک یک صفحه یک روزی داغ و خشک آخرهای تابستان سال هزار و سی سد و یک شمسی بود راه خاکی زیر آفتاب سوزان مرده و تفته مود کوه راه از میان بیابان کویری و قبرالود اینجا و آنجا گم و گور میشد. از افق آخرین پیچ راه دراز که به آبادی شوراب نزدیک قم می رسید، دو مسافر با یک قاطر پیش می آمدند. یکی از دو مسافر آنکه دنبال قاطر می آمد، پسرک لاغر و گیب ای بود با پیراهن گشاد و سفید و بلندی که روی ستره سفید چسب تنش پوشیده بود. روی پیراهن بند کشتی سفیدش را سفت دور کمرش بسته و چندین گره زده بود. مسافر دوم پیرمرد ریش سفیدی بود که او هم جبه بسیار بلندی روی صدرش پوشیده بود و کلاه کتانی کوچک و گردی به سر داشت. پیرمرد روی گرده قاطر خسته نشسته و چشمانش بسته بود. تسرک و پیر هر دو خاک و خلی و از حرم خورشید آب رفته و سوخته به نظر می رسیدند. آفتاب سوزان پوست دستها و چهره های آنها را قهوه ای رنگ پوست پوسته و چغر کرده بود. آنها دو هفته پیش از یزد حرکت کرده بودند. هدفشان تهران بود. پسرک لاغر و سفید پوش چهارده پانزده ساله بود، ریزه، زیبا، با چشمهای بسیار بسیار درشت قهوه‌ای که حتی زیر آفتاب سوزان و کوفتگی سفر می‌درخشید. او زاده دهکده‌ای نزدیک یزد، نامش جاوید و خانوادهش و اجدادش صده های بسیار از زرتشتیان پارسی حومه یزد بودند، پدرش فیروزآقا تاجر خوشنام یزدی بود که هر سال به تهران سفر می کرد. شش ماه پیش پیش از ایام عید نوروز به تهران رفته بود. مقداری خشکبار و پارچه برای فروش به تهران برده بود اما باز نگشته بود. اینک پسر فیروزآقا و عموی پیرش به تهران می رفتند پرسجو کنند که چه اتفاقی افتاده است؟ عموی پیر موبد بهرام که بیش از هفتاد سال داشت در این بعد از ظهر خشک سوار بر قاطر بیرمق شکسته و مغلوب راه و سفر تابستان کویر مینمود و در چهره تکیده ریش سفید و پیکر آبرفته نشانه های از پا افتادگی بود در دشت های بیرون یزد او موبد موبدان یا دستور یک آتشکدهی کهنه بود و پیش از او پدرش و جدش و نیاکانش که به هزار سال یا پیشتر میرسید همواره پسر نخوست پس از پدر موبدی آتش را کرده بودند. او پیش از این تابستان هرگز از یزد فراتر نرفته بود. بار این سفر را هم به خاطر برادرزاده اش جاوید که نگران پدرش بود به گردن نهاده بود. فیروزاقا پدر جاوید هر سال اواخر زمستان سفری تجارتی به تهران میرفت اما همیشه پیش از نوروز و جشنهای باستانی باز میگشت و شب سال نو و نوروز را در خانه میگذراند رسمی که در خانواده زرتشتی هرگز شکسته نمی نمیشد اما امسال شب عید فیروزاقا باز نگشته بود بعد بهار گذشته بود و تابستان هم گذشته بود بیخبری و غیبت فیروزاقا کم کم در پسر او و در موبت بهرام نگرانی ریشهداری به وجود آورده بود که بیشک پیش آمد بدی در تهران روی داده است. به ویژه که در این سفر فیروزاقا زن و بچه را نیز همراه برده بود. در شوراب جلوی یک کلبه کوتاه کاهگلی پسرک قاتل را نگه داشت. شوراب ده دوازده تا کلبه کاهگلی پراکنده بود با تک و توک دهاتی و بچه و سگ و خر که اینجا و آنجا میپلکیدند خورشید دشت اکنون به افق دور آسمان رسیده بود و آفتاب زرد رنگ زمین و کلبه‌های خاک خام شوراب را در خود شست و می‌داد نسیم ملایمی که در این غروبگاه از شمال می‌وزید از حرم دشت میکاست. پسرک دست روی شانه پیرمرد گذاشت و او را تکان داد. اموجان پیرمرد تکان نخورد. پسرک گفت، اموجان باید به شوراب رسیده باشیم، امشب اینجا خستگی در می کنیم. به موهای بلند و سفید پیرمرد دست گشید. کم کم او را واداشت که چشمهایش را باز کند. به او گفت که می رود کمی آب از یک جا و پا کند. کوزه خالی آب را از خورجین درآورد و به سوی کلبه های کاهگلی رفت. وقتی برگشت کمک کرد پیرمرد را از قاطر پایین آورد و گوشه سینه دیوار نشاند. کوزه آب را به لب‌های پیرمرد گذاشت، به او نوشاند. کمی توت خشک و برگه هلو از کیسه خورجین درآورد و گوشه دهان پیرمرد گذاشت. با دست مالش پیشانی و گونه های او را شست و خونک کرد. سینه پیرمرد با نفس های بریده بریده دردناک بود. یک ساعت بعد بعد از آنکه پیرمرد و پسرک مراسم نیایش واپسین را در برابر شفق سرخ رنگ کویر انجام دادند کنار هم به گفتگو نشسته بودند. پیرمرد اکنون چشمان خاکستریش را به برادر دوخته بود. پسرک را با دقت نگاه میکرد او را بررسی میکرد و با دستهای لرزان خود به تاولهای دور لبهای او دست میکشید دستهای پسرک مانند دستهای خود پیرمرد از تاول ترکیده و دوباره تاول زده چغر شده بود پاهای او نیز از زخم خشکیده و کبره بسته و خاک خورده ای تیره بود پیرمرد گفت چه راهی پسرک گفت دیگر چیز زیادی نمانده اموجان بعد از شوراب به قم میرسیم، بعد هم فقط سه چهار روز راه است. هوا هم خنکتر شده. پیره گفت، به یاری پروردگار. بابا همیشه میگفت از قم که میگذرد، هوا بهتر و جاده هموارتر است. به یاری پروردگار. پسرک گفت، فکرش را بکنید اموجان تهران بابا را پیدا میکنیم و به سلامتی برمیگردیم. پیرمرد دستش را روی سینه گذاشت. سرش را تکان داد. به اون زبون بسته چیزی دادی جاوید؟ به خاطر خسته و بینوا نگاه کرد. پسرک گفت علف خوشک هست. مدتی چشمانش را بست. خاموش ماند. بعد رو به آسمان نگاه کرد. گفت به مردم اینجا نگفتی که ما کی هستیم جاوید جان؟ پسارت گفت نه کسی چیزی نپرسید من هم چیزی نگفتم اما من از کسی ترس و واهمه ندارم که کی هستم پیرمرد سرش را رو به آسمان برگرداند باز مدت درازی ساکت ماند بعد گفت مردم اینجاها بیشترشان بازرگتشتی ها روی خوش ندارند پسرک گفت باک نداشته باش پیرمرد گفت مردم این دیار اصل و گوهر خودشان را فراموش کردند. با ناتوانی چشمهایش را بست. پسرک به موهای پیرمرد دست کشید. آسوده باش اموجان همه چیز درست به بیاری پروردگار. ساعتی بعد که پیرمرد دوباره به خواب رفته بود، پسرک پا شد. شمد بلندی را که در خورجین داشتند آورد و روی او انداخت. بعد نشست. با نگرانی به خسخس نفس‌های دردناک و کند پیرمرد گوش کرد. بلند شد، میان دشت خشک ایستاد، سرش را به سوی آسمان و نور ماه بلند کرد. از بچگی به او یاد داده بودند که هنگام نیایش راست و ساده رو به نور بایستد و با پروردگار اهورامزدا سخن بگوید. ایستاد، نیایش کرد، آسمان بزرگ و آبی و کهکشانهای نورانی را هم دوست داشت. پس از نیایش آمد کنار عموی پیرش دراز کشید. انگار سبکتر شده بود دلش شاد و آسوده تر بود و به آینده روشن امیدوار بود. میدانست که در تهران پدر و مادرش را پیدا میکند چونش را هنوز نمیدانست فقط میدانست که آنها را پیدا میکند. فکر میکرد لابد یکیشان بیمار شده است شاید خواهر کوچولویش ناخوش است. نشانی خانه ای را که پدرش در تهران به آنجا رفته بود و هر سال میرفت از پدرش شنیده بود. فیروزآقا محصول خوشبار خود و سایر چیزها را به تهران به خانه یکی از شاهزادگان دربار قاجار میبرد و میفروخت. شازده کمال دین ملکارا که خانه و باغهایش در تهران نزدیک بازار در محله وزیر دفتر بود پسرک می دانست که را پیدا می کند. دلش محکم بود و امیدش به پروردگار، ماه و ستارگان روشن در آسمان آبی پاک می درخشیدند. دو صفحه 5. امشب که زیر آسمان این جهان روی خاک گرم دشت ایران دراز کشیده بود و خوابش نمی برد فکر می کرد یاد روز پیش از حرکتشان از یزد بود، روزی که در آتشکده برای او مراسم صدر پوشان یا رسایی انجام دادند، مراسمی که در کیش زرتشتی تا سن پانزده یا سن تمیزی برای هر پسر و دختر نوباوه اجرا شد. جاوید سالها به این روز فکر کرده بود و خود را با اشتیاق آماده کرده بود، ستر پوشان روزی بود که طی آن پسر از دوران بچگی میگذشت و وارد دنیای مردان میشد ماه پیش که او وارد پانزده سالگی شده بود این مراسم اجتناب ناپذیر شده بود اما خانوادهش با غیبت پدر جاوید نمیدانستند چه کنند و سرانجام وقتی او و امویش تصمیم گرفته بودند به تهران به جستجوی فیروزآقا بروند عمویش که دستور آتش کرده بود پیش از سفر تهران مراسم سدر پوشان جاوید را لازم دانسته بود پیش از این سفر بزرگ و دست زدن به کاری که در خور مردان بود مراسم سدر پوشان جاوید باید برگزار میشد. سپیددم عمویش او را به حمام برد پسرک خود را شست، خشک کرد، پاک کرد، گلاب زد. عمویش برای او نیایش کرد. بعد جامه سفید سنتی را که از چندی پیش برای جاوید تهیه کرده بودند به او پوشاند. موبد بهرام با جبه سفید بلند و سرپوش بلند سفید و کمربند پهن سفید دست پسرک را گرفت و او را به آتشکده آورد. آتشکده بالای تپه بود. سردر آتش کده را با نخ و پنبه و گلهای یاس سفید آراسته بودند موبدان و پیرها و بیشتر مردان زرتشتی شهر و دههای دور و برگرد آمده بودند جاوید آتشكده را دوست داشت به بویژه در روزهایی که آین و مراسمی اجرا میشد بوی آتش و اسفند و عود و لبان و صندل درون آتشكده را هم دوست داشت مراسم صدر پوشان فقط پوشیدن صدره به کمر بستن بند کشتی نیایش در برابر آتش مقدس و سوگند در برابر پروردگار اهورا نبود. او باید امتحان میداد. گرچه در سایر جاهای ایران مراسم صدر پوشان به وسیله آزمایش و پرسش کم کم از بین رفته بود اما در آتشکده کوچک آنها هنوز این رسم كهن اجرا می شود. او میبایست بیستد و به پرسش موبدان و دستورات جواب بدهد. پرسش که درباره مسائل و اعتقادات کیش بزرگ و نوشته های بود و او از بچگی شنیده بود، یاد گرفته بود و با آنها بزرگ شده بود. به ویژه در خانواده با ایمان مانند خانواده آنها که در آن رسوم و اعتقادات ساعتی فراموش نمی او همیشه می‌دانست که پیش از اینکه به سن پانزده سالگی برسد، باید پاسخ پرسش‌های کتاب مقدس را بداند. امروز جاوید، پسر فیروزاقا آنها را می‌دانست. او را کنار آتشدان بردند و ایستاده نگه داشتند. پیران ریش سفید با جبه ها و امامه ها و دستارهای سفید، با چهره های خشک رسمی، چشمهای های جستجو کننده، با صدا سنگین، پرسش ها را آغاز کردند. پرسش هایی که تنین صدا و پژواک جاودانگی صده ها را داشت. در آن ساعت که او کنار آن آتش ایستاده بود و بوی اسفند و لبان و عود و صندل در دماغش بود و عمویش پیش آمد و بند کشتی را که از هفتاد و دو نخ تنیده شده و در دو انتها به صورت گره بود به گردن او انداخت و تمام ساعاتی که او ایستاده بود به پرسش موبدان پاسخ میداد انگار میکرد که او را در میان خون و روان پدرش و عمویش و پدربزرگش و جدش و نیاکانش میکشیدند و به سه هزار سال پیش به روان خود عشذر توشت میرساندند او با صدای آرام و شمرده پاسخ میداد ای پسر تو کیستی؟ من جاوید پسر فیروز هستم که او هم از پشت نیاکان پارسی زرتشتی من است. جان و فروهری که اکنون در جسم من است همان گوهر پاک نیاکان من است که در جسم آنها بود. این جان مقدس همان اهورامزدای پاک است. تو از کجا آمده ای؟ جسم من از پشت پدرم و خون مادرم به این دنیای خاکی آمد و من زمانی در اینجا خواهم بود. لیکن روان من پیش از من وجود داشت و بعد از این نیز وجود خواهد داشت. تو از آن که هستی؟ من یک روان آزادم و از آن کسی نیستم همان گونه که کسی از آن من نیست. به کجا باز می گردی؟ من پاک می مانم و با راستی و نیکی بناب فرموده عشو برای پیکار با بدی به راه نیاکانم خواهم رفت. چون پروردگار با من است من پیروز به آخر زمان خواهم رسید و برای دادرسی ابدی در رستاخیز به اهورامزدا خواهم پیوست در زمان ابدی و جهان هستی جای تو کجاست روان من ابدی و جاودانی است و من همیشه در این جهان که به دستور اهورامزدا آفریده شده است خواهم ماند همانطور که پیش از این در جسم پدران و نیاکانم بودم کار تو در این جهان چیست کار من به دستور اهورامزدا آن است که با منش و خرد باشم و با زندگی ساده و پاک همکاری کنم صلح و صفا داشته باشم و بر من است که با پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک کار کنم وظیفه ابدی من این است پابرجا بر نگه داشتن کیش و آین پاک زرتشت زرتشت کیست؟ زرتشت مقدس پیام پروردگار اهورا مزدارا آورد. پیام پروردگار چیست؟ پیام پروردگار خرد و فکر است. آنکه فکر داشته باشد، فرق بین نیکی و بدی، راست و دروغ، پاکی و ناپاکی را خواهد دانست و به نیروی خرد کار خواهد کرد. پروردگار کیست؟ پروردگار در اوستا به نام اهورامزده آمده است و او آفریننده و هستی بخش بزرگ و دانا و یکتاست سرچشمه نور و نیکی و راستی و پاکی و دانش و خرد است نیکی در چیست؟ نیکی در بارور بودن و در برانداختن بدی و دروغ و ناپاکی است بدی در چیست؟ بدی در نازا ساختن دستور هستی ساده و پاک زندگی است. بدی و ساختن با بدی و دروغ و ناپاکی است. پرسش ها و پاسخها ها ساعت ها و ساعت ها ادامه داشت. درون اون آتش از حرم و دود آتش هر ساعت قلیز می شد. صدای خواندن نیایش از روی جزوه های خرده اوستا از هر سو بلند بود. اوایل بعد از ظهر پسرک پاهایش سست و دهانش خشک شده بود، اما پیرمردان مردان سفید پوش از هر سو از او پرسش می کردند و او پاسخ می داد. آفتاب نزدیک غروب بود که پیرمردان و موبدان او را تبرک دادند، سوگند دادند و با نیایش به کیش سرتشتی پذیرفتند. از امروز او یک مرد زرتشتی رسیده و کامل بود. مزده یست نوزره، تشترش فرورانه، آستی تسجا فره، وره تسجا، آشکارا و نهانی به زبان و به دل به کیش خدا پرستی که آورنده زرتش است استوارم. امویش با دست خود به او اصاره گیاه مقدس هوم نوشاند. بعد بند کشتی را از گردن او برداشت و به کمر او روی صدرش بست، سه دور تاب داد و در جلو دو گره و در عقب هم دو گره زد. بند سفید و محکم پسرک را به پاکی و راستی اهورامزدا پیوند ناگسستنی میداد. صدای خواندن نیایش ها از همه جا بلند بود. آخرین آین های نیایش دست جمعی هم برای او انجام داده شد. هدایایی هم به او داده شد. اکنون همگی او را روی ایوان بزرگ آتشکده بر فراز تپه آوردند گروه زیادی از همکیشان روی ایوان گرد آمده بودند منتظر او بودند برای او دست زدند هلله کردند اسفند دود کردند نیایش غروبگاهی را آن روز بالای تپه انجام دادند و در اینجا و در این لحظه بود که امویش دست دختر کوچکش پوران دوازده ساله را گرفت، جلوی جاوید آورد، نیایش کرد و پوران و جاوید را که از بچگی دوستدار یکدیگر بودند، نامزد نامزده همدانست. امشب جاوید زیر آسمان نیلگون و پرستاره دشت شوراب به سپهر و فلک بیکران و ساده نگاه می کرد. در خودش نیز، هستی و تقدیر ساده ای احساس می کرد. پسر جوانی بود که مرد شده بود. سفر می کرد، دنبال پدرش می رفت. و از اینکه پیشامدهای پیش خانوادهش او را از فردای روز مراسم سدر از خانه بیرون آورده بود و در بوته آزمایش و تجربه زندگی رها کرده بود، نمی حراسید. 3. صفحه نه هوا تاریک و روشن بود که بیدار شدند و آماده ادامه سفر. جاوید قاتل را زین کرد خورجین و کوزه آب را به زین بست رو به فلق رو به خورشید که قبله آنها بود نیایش بامدادی را انجام دادند پیرمرد متاسفانه حالش بدتر شده بود نشسته نیایش کرد نمیتوانست ستون فقراتش را تکان دهد جاوید کمک کرد تا امویش سوار قاطر شود در خطهای چهره و در چشمهای پیر مرد امروز تیرگی شگرفی نشسته بود، اما به هر حال خودش را نگه می داشت. تا قم یک روز بیشتر راه نبود، بعد هم چهار پنج روز تا تهران. در تهران شاید حکیم و پزشکی گیر می‌آوردند. وقتی راه افتادند خورشید در افق دور آسمان روشن بود، صدای خروزهای آبادی شوراب بلند شده بود. تا نزدیک نیم روز از جاده خشک و خاکی و دشت کوبیدند و بالا آمدند. جاوید افسار قاتل را گرفته بود. به جلو می کشید. بالای زین به جلو خم شده بود. از حال رفته بود. باد تندی از طرف کبیر می خورشید بالای سرشان نور داغ می بارید. جاوید نگران امویش بود. امروز می فهمید که چرا در یز پیرهای قوم و خیش همه پیرمرد را از این سفر پرهیز داده بودند. دستور بهرام هفتاد ساله بی و تکیده بود و توانایی این سفر را نداشت و آدمی سفر نکرده بود و هرگز این چنین بی پناه و برهنه به کویر سخت و آفتاب داغ تسلیم نشده بود. ظهر وقتی زیر درختی استراحت می پسرک میدید که وضع عمویش امروز به سرعت و می شود. اما پیرمرد اشاره کرد که حرکت کنند. گفت مقصدی دارند وظیفه دارند باید انجام دهند. از درد و از مرگ که کار اهریمن است نباید حراست داشت. سر شب که به درون دروازه قم، جلو کاروانسراهای قدیمی و خانههای خشتی و کهنه رسیدند، پیرمرد ساعتها روی گرده‌ی قاطر در خواب و بیهوشی بود. پسرک او را صدا زد و بیدار کرد. فکر میکرد بهتر است شب را در اینجا بمانند. باید دوایی برای سینه پیرمرد گیر بیاورند یا دست کم استراحتی بکنند. اما پیرمرد مرد که چشمانش را باز کرده و فهمیده بود به کجا رسیدهاند سرش را تکان داد. اینجا جایانها نبود، باید پیش در بروند. در چشمهای بینورش در این شب تاریک چیزی بی درمانتر از واهمه و درد موج میزد. پسرک مطمئن نبود چه باید کرد. پیرمرد راست نشست، سرش را به آسمان بلند کرد. مدتی با لبهای لرزان با پروردگار خود سخنانی گفت. بعد رأی و ارادهش را به زبان آورد. به پسرک گفت حرکت کند. به آرامی از شهر بگذرد و او را از دروازه دیگر به طرف تپه‌های بیرون دروازه شمال شهر ببرد. پسرک کوشش کرد رای عمویش را عوض کند. اما بعد فکر کرد لابد امویش چیزهایی می دانست که او خبر نداشت. دستور پیرمرد را اجرا کرد. پس از یک ساعتی که به قاطر خسته آب و علف داد و از رهگذران گذران سراغ راه و نشانی گرفت باز به راه افتاد. پیش رفت و با افسار قاطر در دست از دروازه دیگر خارج شد. ماه درشتی در آسمان بود و جاده خاکی را روشن میکرد. امشب ابرهای تیره ای نیز در آسمان پراکنده بودند و بوی دم کرده و بدی در هوا بود. به هر گونه بود در دل شب از جاده بالا آمدند. دشت خالی و محتابی بود. نیمه های شب وقتی به اولین بلندی ها رسیدند پسرک قاتل را از جاده بیرون کشید و به سوی تپه های شیبدار و اندک بلند برد. روی سینه تپه ها تا آنجا که میشد قاطر و پیرمرد بیهوش را بی خطر بالا برد و پیش رفت بعد ایستاد روی تپه‌ای که تکیه گاه داشت پیرمرد را به آرامی پایین آورد و گوشه‌ای خواباند یک ساعت بعد او جای عمویش را مرتب کرده روی او را پوشانده و آتشی روشن کرده بود پیرمرد حالا دراز کشیده و به شیار خاکی تپه تکیه داده بود، سرش به خاک تپه بود، چشمانش به آتش بود، دهانش در نیایش به یک سو باز بود،